انجمن کتاب ایران تقدیم می کند. در تکاپوی معنا از ترینا پالاس برگردان تیب زندیپور نشر میترا چاپ پنجم پاییز 1386 راوی علی درشیری کتابی ناهمانند برای همه به جز آنهایی که کاملا معیوز شدهاند و حتی آنها هم ممکن است پنهانی از آن لذت ببرند آنچه از نظرتان میگذرد داستان یک کرم درختی است که در یافتن ماهیت واقعی خیش دچار زحمت شده است مثل من، مثل ما فصل اول روزی کرم کوچک راه راهی سر از تخمی که مدتها کاشانه او بود درآورد و گفت سلام بر دنیا هی hey, اینجا در پرتای آفتاب واقعا روشنه با خود گفت گرستم و بیدرنگ شروع به خوردن برگی نمود که بر روی آن متولد شده بود و برگ دیگر و دیگر و دیگری را خورد و بزرگتر و بزرگتر شد تا اینکه یک روز از خوردن دست کشید و با خود اندیشید باید مفهوم زندگی بیش از فقط خوردن و بزرگتر شدن باشد این دارد کسل کننده می شود به دنبال این فکر راه را از درخت با محبتی که بر سر او سایه افکنده و او را تغذیه کرده بود به پایین خزید او در جستجوی چیزهای بیشتری بود همه جور چیز تازه پیدا می شد سبزه خاک حفره ها و حشرات کوچک هر یک او را به خود مجذوب نمودند اما هیچیک او را راضی و متقاعد نساختند وقتی به چند خزنده دیگر مثل خودش برخورد کرد خیلی به هیجان آمد اما آنها سخت مشغول خوردن بودند و وقتی برای صحبت کردن نداشتند درست همانطور که خود راه راه بود با حسرت آهی کشید و گفت آنها هم بیشتر از من چیزی از زندگی نمی دانند بعدها روزی راه راه خزندگانی را دید که واقعا می‌خزیدند. در جستجوی هدف و مقصدشان به اطراف نگاه کرد و ستون عظیمی را دید که سر به فلک کشیده بود. وقتی به آنها ملحق شد، دریافت که آن ستون تلی از کرم‌های درختی است که در هم لولیده و یکدیگر را حل می‌دهند. ستونی از کرم درختی. به نظر می‌رسید که کرم‌ها می‌کوشند تا به قله برسند. اما قله طوری در ارفان ناپدید شده بود که راه راه نمیفهمید در آنجا چه بود. همانند شیده‌ی گیاهان که در بهار به توقی میآید، شور و هیجان ای را احساس نمود. شاید آنچرا که جستجو کنم بیابم. راه راه سرشار از حیجان و استراب از یک خزنده همنوع پرسید تو می دانی چه خبره؟ او گفت من هم الان رسیدم، هیچ کس وقت توضیح دادن ندارد. همه سخت سرگرم تلاش برای رسیدن به آنجایی هستند که دارند میروند آن بالا راه راه ادامه داد اما آن بالا چیه؟ آن را هم هیچ کسی نمی داند. ولی باید خیلی خوب باشد چون همه دارن به آنجا حجوم می آورند خدا من دیگر وقت ندارم و به داخل تل فرو رفت سر راه, راه از اشتیاق و فکر تازه داشت می ترکید نمی افکارش را متمرکز سازد هر ثانیه خزنده دیگری از او سبقت می و در ستون ناپدید می شود. تنها یک راه حل وجود دارد خود را به درون هل داد فصل دوم لحظات اولی که بر روی ستون قرار گرفت برای بود راه راه را از هر طرف هل داده، لیت زده و بر رویش قدم می‌گذاشتند. جریان از این قرار بود یا باید بالا بروی یا از تو بالا می روند. راه راه بالا رفت دیگر خزنده هم نوعی روی ستون وجود نداشت آنها فقط تهدیدات و موانع شده بودند که وی آنها را به گامها و موقعیت ها تبدیل کرده بود این طرز تفکر یک بعدی واقعا مفید بود و راه راه احساس کرد که خیلی جلو رفته است اما بعضی از روزها به نظر می رسید که فقط می تواند جای خود را حفظ کند در این مواقع بود که آوای مستربی مرتب از درون به او می زد که آن بالا چیه؟ با خود زمزمه کرد ما داریم به کجا می رویم؟ یک روز که نقزدن ها شده بود و اوقاتش را ترخ کرده بود دیگر نتوانست تحمل کند و فریاد کشید که نمیدانم، اما فرصت فکر کردم به آن نیست کرمه کوچک رنگی که از بالای سر او می خزید گفت چی گفتی؟ راه را من کنان جواب داد هیچ چی داشتم با خودم حرف می زدم در حقیقت چیز مهمی نیست فقط متعجبم که به کجا می رویم؟ کرم زرد گفت: میدانی من هم در همین فکر بودم اما از آنجا که هیچ راهی برای فهمیدنش نیست من به این نتیجه رسیدم که مهم نیست. او از گفته احمقانه خود سرخ شد و به سرعت اضافه کرد، به نظر نمیرسد که هیچ کس دیگر هم نگران این باشد که ما به کجا می رویم؟ پس باید خوب باشد. اما دوباره سرخ شد. چقدر مانده تا به قله برسیم؟ راه راه پاسخ داد؟ از آنجا که ما نه در پایین هستیم و نه در بالا باید در وسط باشیم؟ کرم زرد گفت: «اوه و هر دو مجددا شروع به بالا رفتن کردند ولی حالا راه راه احساس تازهی داشت نگرشی یک بودیش را از دست داده بود. چطور می توانم روی کسی که همین الان به او صحبت کردم پا بگذارم. راه راه تا آنجا که ممکن بود از کلم زرد اجتناب می برزید. اما یک روز به او که تنها راه سعود را سر کرده بود برخورد نمود ایستاد و گفت خب فکر می کنم یا جای تو یا جای من و درست از روی سرش عبور کرد حین عبور کرم زرد به او نگاهی کرد که او را از خود خجل ساخت گویی با نگاه خود به او می میگفت هرچم که آن بالا باشد واقعا این اندازه ارزش ندارد راه را از روی کرم زرد به کناری خزید و آهسته گفت ببخشید و کرم زرد گریه را سر داد که تا آن روز که به تو برخوردم که با خودت حرف میزدی به امید آنچه که در پیش بود می توانستم این زندگی را تحمل کنم از آن روز به بعد دیگر قلبم آرام نداشته است نمیدانم دانم چه کنم تا آن موقع نمیدانستم که چقدر از این زندگی بدم می آید حالا وقتی تو اینقدر با محبت به من نگاه می کنی مطمئنم که این زندگی را دوست ندارم فقط دلم میخواهد با تو باشم و کاری مثل خزیدن و سبز انجام دهم ده قلب راه راهرا فروریخت همه چیز در نظرش دگرگون گشت ستون دیگر مفهومی نداشت به نجوا گفت من هم این کار را دوست دارم اما این به معنی دست کشیدن از بالا رفتن بود تصمیمی که اتخاذ آن آسان نبود کرم زرد عزیز شاید ما نزدیک قله باشیم شاید اگر به هم کمک کنیم بتوانیم سریعا به آنجا برسیم او گفت شاید اما هر دو می‌دانستند که این چیزی نبود که بیش از همه میخواستند. کرم زرد گفت بیا برویم پایین باشه و از بالا رفتن دست کشیدند وقتی انبوه کرم‌های درختی بر روی آنها می‌خزیدند به یکدیگر می‌چسبیدند هوا خیلی بد بود اما آنها از اینکه با هم هستند خوشحال بودند و به اتفاق گلوله‌ای بزرگی ساختند تا هیچ کس نتواند بر روی و معده آنها پا بگذارد برای مدتی که به نظر طولانی می‌آمد ابدا هیچ کاری نکردند یک دفعه حس کردند که دیگر چیزی بر روی آنها نمیخزد از یکدیگر جدا شده و چشمانشان را باز کردند آنها در کنار ستون کرم درختی بودند کرم زرد گفت سلام راه راهی راه راهی گفت سلام زردی و به درون های سبز و تازه خزیدند تا بخورند و چرت بزنند قبل از اینکه به خواب بروند راه راه زردی را در آغوش کشید اینطور طور با هم بودند مسلمن از شدن در آن جمعیت متفاوت است یقینا هست او خندید و چشمانش را فروب است فصل سوم. به این ترتیب زردی و راه راه در سبزه به دنبال هم دویدند و بازی کردند و خوردند و فربه شدند و به یکدیگر عشق ورزیدند آنها از اینکه هر لحظه و با هر کس در جنگ نبودند بسیار خوشحال بودند برای مدتی زندگی مثل بهشت بود اما با گذشت زمان حتی در آغوش کشیدن یکدیگر هم کمی کسل کننده به نظر می آمد چه هر یک هر تایر موی دیگری را می شناخت راهراه را نمی توانست از کنجکاوی و تردید خودداری کند باز هم زندگی باید مفهوم بیشتری داشته باشد زردی بی قراری راه را می دید و می کوشید تا او را بیش از حد خوشحال و آرام سازد به او می گفت فقط فکر کن که این زندگی چقدر بهتر از آن وضع آشفته و وحشتناکیست است که ترک کردیم و او پاسخ میداد اما ما نمیدانیم که آن بالا چیست شاید پایین آمدن ما اشتباه بود شاید حالا که استراحت کرده این دوتایی بتوانیم به با آن بالا برسیم زردی ملتمسانه میگفت راه راهی عزیز خواهش میکنم ما خونه خوبی داریم یکدیگر را دوست داریم و این کافیه اینجا خیلی بیشتر از آن چیزی است که همه آن بالا روند‌های تنها دارند او به قدری مطمئن بود که راه را گذاشت قانعی سازد اما فقط برای مدت کوتاهی. اشتیاق راه را برای بالا رفتن شدیدتر می شد ستون پاتوق او شده بود مرتب به آنجا می رفت به بالا نگاه می کرد و حیران بود اما قله همچنان تیره و ناپیدا می نمود یک روز نزدیک ستون سه صدای خفیف و آهسته راه را از جا پراند سکرم درختی بزرگ از جایی افتاده و له شده بودند دوتا از آنها مرده به نظر می رسیدند. اما یکی هنوز تکان می‌خورد. راهرا آهسته گفت چی شده می توانم کمکت کنم؟ او توانست فقط چند کلمه بگوید آن بالا آنها می بینند. فقط پروانه ها را و جام به جانافرین تسلیم کرد راه, راه به خانه خزید و ماجرا را به زردی گفت هر دو آرام و ساکت بودند معنی آن پیام مرموز چه بود؟ آیا آن کرم ها از منتهای ستون افتاده بودند؟ سرانجام راه را اعلام کرد من باید بدانم من باید بروم و راز قله را بفهمم و با لحنی ملایم تر ادامه داد میل داری بیایی و به من کمک کنی؟ زردی در درون خود به نزا پرداخت او راه راه را دوست داشت و میخواست که با او باشد زردی میخواست به او کمک کند تا موفق شود اما فقط نمی‌توانست باور کند که رسیدن به آن قله ارزش آن همه مرارت را دارد او هم میخواست که به آن بالا برسد زندگی را به خزیدن گذراندن برای او هم کافی نبود از این جهت مجبور بود اذعان کند که ستون ظاهرا تنها راه چاره بود راه را چنان مطمئن به نظر می‌آمد که زردی خجالت کشید موافقت نکند او احساس حماقت و دستپاچگی هم می کرد زیرا هیچ وقت نتوانسته بود دلایلش را طوری در قالب کلمات بریزد که منطق راه راه بپذیرد با وجود این منتظر ماندم و مطمئن نبودن بهتر از عملی بود که نمی توانست به آن ایمان آورد او نتوانست توضیح دهد، نتوانست چیزی را ثابت کند و با همه ای اشق و نتوانست با راه راه برود او فقط میدانست که برای به تعالی رسیدن بالا رفتن راه درستی نبود با قلبی شکسته گفت نه و راه راه برای سعود خیش او را ترک نمود